Allahu Akbar! Niroz jazad ar kinaar as jahad Rizaman diyakir digar as جهانی که حق می خدای تو است چرا بهر ما یک شوار است جهاد نترس ای مجاهد ز شب چراغی به شب های تار است جهاد ز خزان جفا واسطم برای مسلمان بهار است جهاد بیا ای مسلمان به سوی جهاد زمانه شما انتظار است جان بروید لالی گلا گل لال علی گل گل سنو لال زار است جان مجاہد بناست خدا As-Jahad Bi-bun-ya di-sazish nabash an-Qirar Di-jimah-kamu Ustuwa-Ras-Jahad Bi-kaw-li-resul-i-khodai-kariim Hamita abad Bir-qirar As-Jahad Bi-pish-ta-z-az-bihar shu بروز جزا در کنار است جهاد وزامندی کردگار است جهاد جهادی که حکم خدای تو است چرا بحر ما یک شعار است جهاد نتاس مجاید ستاری شم چرا دیب شب های تا از جهاد ز فصل خزان جفا و ستم برای مسلمان بهار از بیای بیا ای مسلمان به سوی جهاد ز بحر شما انتظار از جهاد ز خونت بروید گل لالی گلا گل شنو لال از راست جا مجاهد بنزد خدا سر فراست بره مؤمنان افتخار از جا به بن سازش نباشن قرار دجه محکم و اسطوار از جا مقاله رسول خدای کریم همی تا اماد برقرار از از بهر خود بر عاشقان وصل یار اس جهاد برای عاشقان جهاد